هدیه شعبد باز زمانهای قدیم پیرمردی تو کلوهی وسط جنگل زندگی میکرد. همسرش مرده بود و اون همراه تنها پسرش که اون را هم خیلی دوست داشت روزگار خودشون رو میگذراندن. نزدیکی های کلبه اونا ردیفی از درختای قان وجود داشت که بالای اونها تعدادی از پرندگان جنگل لونه ساخته بودند. پسرک از پدرش اجازه گرفته بود که گاهی بتونه اونها رو شکار کنه اما پیرمرد همیشه مانع این کار اون میشد یه روز وقتی پیرمرد برای جمع‌آوری هیزون به داخل جنگل رفته بود پسرش تیر و کمونش رو برداشت و به سمت یکی از پرنده هایی که در حال رفتن به لونش بود تیراندازی کرد اما هدفگیریش خیلی دقیق نبود و پرنده فقط مجروف شد بال بال زنان روی زمین افتاده بود. پسرک فوری می تا اون رو بگیره. هرچند که پسرک با سرعت تمام این کار انجام میداد و پرنده هم خیلی آهسته و کشون کشون خودش رو از محلکه خطر دور میکرد، اما اون نتونست خودش رو پرنده برسونه. چون همیشه پرنده چند قدم جلوتر از اون بود. پسرک انقدر شیفته این تقیب و گریز شده بود که ناگهان، متوجه شد که از کلبهشون خیلی دور شده و خودش رو در اعماق جنگل پیدا کرد. جایی که براش کاملا ناآشنا بود. تصمیم گرفت که دست از این تعقیبات بیفایدش برداره و به کلبهش برگرده. پسرک با خودش فکر کرد اگه از همون مسیری که اومده برگرده براش راحت تره. اما هر چقدر که پیش میرفت مسیر برگشتش پرپیچ و خمتر می شد. به خاطر همین ایستاد تا شاید کلبهی ببینه و از اهل اون کلبه مسیر برگشتش رو بپرسه. اما هیچ نشونه از وجود کلبهی که اون حوالی باشه نبود. پسرک از ترس وجود گرگهایی که ممکنه به اون حمله کنن به خاطر داستانهای زیادی که در این باره شنیده بود و به خاطر اینکه هوا خیلی سرد بود تصمیم گرفت که اصلا توقف نکنه و راهش ادامه بده. کم کم شب شد. اون از کوچیکترین صدایی که میشنید وحشت میکرد تا اینکه ناگهان شعبده بازی رو دید که با سرعت در حالی که یه گله گرگم پشت سر اون در حرکت بودن داره پسرک نزدیک میشه همون موقع پسرک دل و جرعتی پیدا کرد و تیر و کمونش رو آماده کرد اون کمونش رو به طرف بزرگترین گرگ گله گیری کرد و تیرش رو رها کرد تیر پسرک درست به قلب گرگ خورد بعد هم تیرهای دیگه‌ای بود که پسرک یکی بعد از دیگری به سمت گورکان رها کرد. شووده باز از فداکاری پسرک به خاطر اینکه اون رو از دست گورکان نجات داده بود، خیلی خوشحال شد ازش قدردانی کرد و پسرک رو به خونش دعوت کرد. پسرک هم در جواب گفت: اتفاقا از این پیشنهاد شما خیلی خوشحالم که میتونم شب و جای به صبح برسونم چون من تمام این روز رو تو جنگل سرگردان بودم. راه خونه گم کردم. شعباد باز جواب داد پس همراه من بیا. حتما گرسنه هم هستی. هر دوشون به راه افتادند. وقتی پسرک به خونه شعباد باز رسید از شدت خستگی یه راست روی تخت دراز کشید و به خواب سنگینی فرو رفت. اما شعباد باز دوباره به جنگل برگشت تا مقداری غذا تهیه کنه. چون هیچی تو خونش برای خوردن پیدا نمیشد. تو قیبت شعبت باز خدمتکار خونه به اتاق پسرک رفت سعی کرد که اون رو از خواب بیدار کنه اون چند بار پاش رو روی زمین کوبید و حتی پسرک رو تکون داد و صداش زد و بهش گفت جونت در خطره باید از اینجا فرار کنی اما پسرک چشماش رو باز نکرد مثل یه تیکه سنگ آروم و بی خوابیده بود طولی نکشید که شوبدباز باز از جنگل برگشت. به خدمتکار خونش دستور داد یه چیزی برای خوردن آماده کنه. غذا خیلی سری آماده شد. شوبدباز باز پسرک رو صدا زد و بهش گفت که بیاد و غذا بخوره. اما پسرک بیدار نشد. شوبدباز باز و خدمتکاراش بدون پسرک سر میز غذا نشستند و مشغول خوردن شدند. شعباد باز دوباره به جنگل برگشت تا چیزی شکار کنه. وقتی که برگشت، باز هم پسرک رو صدا زد. اما وقتی تلاش خودش رو بیحاصل دید و نتونست اون رو از خواب بیدار بکنه، برای بار سوم دوباره به جنگل برگشت. شعباد باز هنوز برنگشته بود که پسرک از خواب بیدار شد و لباسهاش رو پوشید و بعد هم از پله ها پایین اومد، و شروع به صحبت با خدمتکار کرد. دخترک خدمتکار قبلا شنیده بود که پسرک جون اربابش رو نجات داده و در نتیجه درباره این موضوع و فرار کردن پسرک حرفی به میون نیه اما در مقابل به اون گفت اگه شعبت باز ازت خواست که پاداشی به خاطر این فداکاریت انتخاب کنی باید اون اسبی رو که ردیف سوم استبل ایستاده رو ازش درخواست کنی مدتی بعد شعباد باز از جنگل برگشت. هر اونها شروع به خوردن غذا کردن. بعد از خوردن غذا شعباد باز گفت خب از تو میخوام که در برابر این فداکاریت پاداشی از من بخوای. پسرکم جواب داد من اون اسبی رو که تو ردیف سوم استبل ایستاده رو میخوام چون برای رفتن به خونه راه درازی در پیش دارم و نمیتونم پیاده این همه راه رو تهی کنم. شعبده باز جواب داد این اسب جزء بهترین اسبای منه تو میتونی یه چیز دیگه ای از من بخوای اما پسرک گفت که غیر از اون اسب چیز دیگه ای منو خوشحال نمیکنه در نتیجه شعبده باز با درخواست پسرک موافقت کرد علاوه بر اون اسب شعبده باز یه فلوت یک ویولون و یک ستار هم به اون هدیه کرد و گفت اگه جونت در خطر بود، این ستار رو لمس کن و اگه کسی به کمکت نیومد اون وقت این ویولون رو بنواز. و اگر هم کمکی به تو نکرد، فلوت رو بزن. پسرک از شعبه باز تشکر کرد و بعد هم هدیهاش رو برداشت سوار بر اسبش شد و تاخت کنان راه برگشت به خونش رو در پیش گرفت. هنوز مسافت زیادی طی نکرده بود که تو نهایت ناباوری متوجه شد که اسبش با اون حرف میزنه. اسب به پسرک گفت: برگشتن تو به خونه در حال حاضر هیچ فایده ای نداره. چون تا به خونه برسی پدرت تو رو به باد کتک میگیره. بهتره ابتدا به چند تا شهر کوچیک سر بزنیم. مطمئنم که بخت و اقبال خوبی در انتظارته. این نصیحت های اسب پسرک رو خیلی خوشحال کرد. چون اون خودش رو یه مرد احساس میکرد. و فرصت رو برای دیدن گوشه هایی از این دنیا از دست نداد. وقتی اونها وارد پایتخت سرزمین شدند، همه اهالی شهر زیبایی و شکوه اسب اون رو تحسین کردند. حتی وقتی خبر عظمت و شکوه این اسب به گوش پادشاه رسید، اونم علاقمند شد که این اسب رو از نزدیک ببینه. در حقیقت پادشاه راغب بود که این اسب رو از اون بخره. به خاطر همین پادشاه به اون گفت که حاضر هر قیمتی رو برای اسبش بپردازه مرد جوون لحظهای به فکر فرو رفت و قبل از اینکه حرفی بزنه اسب خیلی آهسته بهش گفت منو نفروش اما از پادشاه درخواست کن که منو به استبل اسبهاش ببره و اونجا به من غذا بده اون وقت سایر اسب‌های استبل عصب هم مثل من زیبا میشن. پادشاه از شنیدن حرفهایی که اسب گفته بود خیلی خوشحال شد خیلی زود اسب رو به استبل سلزنتی منتقل کردن و یه آقل مخصوص براش در نظر گرفتن هنوز اسب مقداری از اون علوفهایی که براش آماده کرده بودند رو نخورده بود که تغییرات عجیبی تو سایر اسب‌های استبل آشکار شد بعضی از اسب‌ها سالیان سال تو جنگ پادشاه اون رو همراهی کرده بودند. سن و سال زیادی هم داشتن اما یه دفعه حال و سرزنده شدن و دوباره به روزهای جوانیشون برگشتن. پادشاه هم از دیدن این صحنه ها به وجد اومده بود. اما تیمارگر اسبهای های سلطنتی اخم کرده بود و با ناراحتی به صاحب این اسب نگاه میکرد. در واقع بهش حسرودی میکرد. روزی نبود که قیبت این مرد رو پیش پادشاه نبره و پشت سرش حرف نزنه. اما پادشاه هیچ توجهی به حرفهای اون نمیکرد. در نهایت هم، تیمارگر اصفهای پادشاه به اون گفت که پسرک ادعا کرده که میتونه اسب مخصوص پادشاه رو که همیشه تو میدونای جنگ شما را همراهی می‌کرده و سالها پیش توی جنگر گمشده رو پیدا کنه. پادشاه که از اون زمان تا به حال همیشه اسب اصف گمشدش بود با شنیدن این داستان ساختگی تیمارگر، بلا فاصله مرد جوان رو پیش خودش احضار کرد و بهش گفت تو سه روز فرصت داری تا اسب منو پیدا کنی وگرنه به ضررت تموم میشه. مرد جوان از شنیدن این دستور پادشاه یکی خورد. اما در برابر پادشاه فقط تعظیم کرد و بعدم یک راست به سمت استب برگشت. اسب به پسرک گفت نگران چیزی نباش. از پادشاه تقاضا کن صدر از قاب نر در اختیارت بذاره و اجازه کشتن و قطع قطعه کردن اونها رو به تو بده اون وقت ما میتونیم سفرمون رو شروع کنیم وقتی به رودخونه رسیدیم یه اسب اونجا ظاهر میشه به سمت تو میاد اما تو نباید بهش اتنایی کنی لحظه ای بعد اسب دیگه ای ظاهر میشه کاری به کار دومی هم نداشته باش اما وقتی اسب سوم ظاهر شد زین و یراق من رو روی اون ببند همه چیز همون طوری که اسب توصیف کرده بود اتفاق افتاد. اون وقت اون اسب سوم شروع حرف زدن کرد و گفت قرار کلاق شعبد باز ما رو بخوره. اما تو باید مقداری از گوشت گاو رو به اون بدی. همون موقع من به سرعت باد حرکت می کنم و تو رو از چنگال های نجات می خلاصه. مرد جوان طبق گفته های عمل کرد و اون عصب رو پیش پادشاه ها برد. تیمارگر وقتی از این موضوع باخبر شد به مرد جوان حسادت کرد و به فکر افتاد تا کاری بکنه که اون رو پیش پادشاه ها رو ذلیل کنه آخرش یه دیگه ای کشید به پادشاه کفیه اون مرد جوان اظهار کرده که میتونه همسر پادشاه رو که سالیان قبل بدون هیچ هیچگونه رد نشونهی ناپدید شده رو پیدا بکنه پادشاه خیلی زود پسرک رو دوباره احزار کرد و ازش خواست که چه زودتر همسر گم شدهش رو هم به قصد برگردونه وگرنه سرش رو از جدا میکنه. پسرک بیچاره بعد از شنیدن این حرف یکی خورد. با خودش گفت من ملکه رو پیدا کنم چطور میتونم این کار رو انجام بدم وقتی ساکنای قصد از احده انجام این کار بر نایمادن. پسرک بیچاره خیلی آهسته به طرف استبل رفت. سرش رو روی شونه اسبش تکیه داد و گفت: پادشاه از من خواسته همسر گم رو هم پیدا کنم. چطور میتونم این کارو بکنم؟ وقتی که از گم شدن همسر اون سالیان سال سپری شده. اسب جواب داد: قصه نخور. ما از عهده انجام این کار هم برمیاییم. تو باید منو به همون ای که دیروز رفتیم ببری. اون وقت من داخل آب رودخونه میشم شکل و شمایل قبلی خودم رو پیدا میکنم چون من همون همسر پادشاه هم که توسط اون شعبد باز تبدیل به اسب شده بودم پسر جوون از شنیدن این حرفها خیلی خوشحال شد بلافاصله سوار اسبش شد و تاختکنان به سمت رودخونه رفت وقتی کنار رودخونه رسید اسب داخل آب شد و سرش رو زیر آب فرو برد وقتی هم که از آب بیرون اومد به یکی از زیباترین زنای دنیا تبدیل شده بود. اون لبخند زنان به سمت پسرک اومد و اون وقت هر دوتاشون راهی قصد شدن. پادشاه هم از دیدن همسر سابقش خیلی خوشحال شد و برای قدردانی از پسرک هدیه با ارزشی به اون داد. حتما فکر میکنید پسرک بعد انجام این کارها آرامش خوش رو پیدا کرده بود؟ اما نه. اون تیمارگر حسود که لحظه ای دست از دشمنی با اون برنمی داشت همچنان در فکر ترراهی نخشاهای دیگه ای بود که پسرک از احده انجام دادن اونها برنیاد نیاد این بار پیش پادشاه رفت و بهش گفت شنیدم که این جوون قصد داره که تاج و تخت شما رو هم تصاحب کنه پادشاه از شنیدن این حرفها خیلی عصبانی شد بلافاصله فاصله دستور داد که چوبه دار رو آماده کنن پسرک حتی اجازه دفاع کردن از خودش رو هم نداشت. قرار شد که بدون محاکمه به دار آویخته بشه. اما زمانی که پسرک جوان به سمت چوبه دار میرفت، از پادشاه تقاضا کرد که به اون اجازه بده تو آخرین لحظات عمرش نقمه ای رو با ستار خودش به نوازه. پادشاه اجازه داد. اما اون تا سیمه های ستارش رو لمس کرد معمور مجازات اعدام و دستیارش شروع به رخصیدن کردند هرچی صدای آهنگ ستار بلندتر میشد اونها تونتر و تندتر میرقصیدن. و عاقبت اونها به التماس افتادند که پسرک دست از نواختن برداره اما اون هیچ اعتناعی به خواهش اونها نمیکرد و زمانی که خورشید غروب کرد هر دوی اونها بیحال و خسته نقش زمین شدند و در نتیجه اجرای حکم اعدام به صبح فردا موکر شد. داستان نقمی ستار تو تمام شهر پخش شد. صبح فردای اون روز پادشاه و همه درباریا تو میدون شهر جمع شدن تا همراه با بقیه جمعیت مراسم اعدام پسرک رو تماشا کنن. بار دیگه پسرک از پادشاه تقاضا کرد که به اون اجازه بده تا تو آخرین لحظات عمرش آهنگی رو هم با ویولن خودش بنوازه. پادشاه با این درخواست پسرک هم موافقت کرد. اما تا اون شروع به نواختن کرد، پای همه افرادی که اطراف چوبه دار اجتماع کرده بودن، بی اختیار به هوا بلند شد و ناگهان همه جمعیت شروع به رقصیدن کردند. این رقص غروب آفتاب ادامه به پیدا کرد. شب شد. به انجام مراسم اعدام تا صبح روز بعد به تعویق افتاد روز سوم قبل از انجام مراسم اعدام پسرک از پادشاه تقاضا کرد که به اون اجازه بده تا تو آخرین ده عمرش آهنگی رو هم با فلوتش بزنه پادشاه با این درخواست اون مخالفت کرد و گفت تو دیروز کاری کردی که من تمام روز رو برخسم اگه امروز هم این اتفاق بیفته کارم تموممون میفتم و میمیرم بهتر فکر نواختن آهنگ رو از سرت بیرون کنی بعد هم دستور داد که مراسم اعدام هر چه سریتر انجام بشه پسرک جوون با شنیدن این دستور پادشاه خیلی غمگین شد در نتیجه اطرافیان پادشاه دلشون به حال اون سوخت و به پادشاه گفتن اون برای مردن خیلی جوونه اگه قراره که تو آخرین لحظات عمرش با نواختن فروت شاد بشه با خواستش موافقت کنید و بالاخره پادشاه برخلاف میل باطنیش با تقاضای پسرک موافقت کرد اما قبل از اینکه پسرک تو فلوتش بدمه پادشاه به خاطر ترس از اینکه یک باره و بی اختیار شروع به رقصیدن کنه دستور داد که دست و پاش رو به درخت سنوبر ببندن وقتی پسرک شروع به نواختن کرد با اینکه دست و پای پادشاه با تناب به تنه درخت بسته شده بود بدنش شروع به تکون خوردن کرد های پادشاه به خاطر ساییده شدن با تنه درخت پاره پاره شدن و پوست بدن پادشاه هم که با تنه درخت تماس داشت خراش برداشته بود. پسرک همچنان سرگرم نواختن فروتش بود که ناگهان شوبد باز ظاهر شد و پرسید: چه خطری تو رو تهدید میکنه که منو احضار کردی؟ پسرک جوان جواب داد: اونا میخوان منو ادام کنن. چوبه دار آماده است و معمور اجرای حکمم منتظره اینه که من نواختن فلوتم به پایان برسه. شوبه گفت نگران نباش. همون لحظه اون چوبه دار رو بلند کرد و به هوا پرتاب کرد. هیچکس نفهمید که چوبه دار چجوری از سر جاش بلند شد و به هوا پرتاب شد. بعد هم شوبه رو به پسرک کرد و گفت کی تو رو به مجازات اعدام محکوم کرده؟ پسرک با دستش به طرف پادشاه که هنوز با تناب به تنه درخت سونوبار بسته شده بود اشاره کرد شبدباز بدون معطلی درخت را از ریشه در آورد و همراه با پادشاه که به اون بسته شده بود به هوا پرتاب کرد درخت هم مثل چوبه دار تو ارماق ابرها از نظرها ناپدید شده بود پسرک دوباره آزادی خودش رو به دست آورد و مردم شهر اون رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب کردن تیمارگر اسبهای پادشاه هم از شدت حسادت خودش رو تو آب غرق کرد علاوه اگر همین حسادت های اون نبود شاید این مرد جوان هم هرگز به ثروت نمیرسید و همه عمرش رو تو فقر و تنگستی سپری می کرد. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نشانی ویبلاگ ما ام s t i b l o g f a c o m mehran doosti blockfa com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی